فصل 16 هم. پس از پایان روز سبت مریم مجددیه مریم مادر یعقوب و سالومه روغنهای معطری خریدند تا بروند و بدن عیسی را تتیین کنند صبح زود روز یکشنبه درست بعد از طلوع آفتاب به سر قبر رفتند آنها به یکدیگر میگفتند، کی سنگ را برای ما از جلوی قبر خواهد غلطانید وقتی خوب نگاه کردند دیدند که سنگ بزرگ از جلوی قبر و عقب قلطانیده شده است پس به داخل مقبره رفتن و در آنجا مرد جوانی را دیدند که در طرف راست نشسته و لباس سفید بلندی در برداشت آنها متعیر ماند اما او با آنان گفت عجب نکنید شما عیسی ناصری مسلوب را میجویید، او زنده شده دیگر در اینجا نیست نگاه کنید اینجا جایی است که او را گذاشته بودند حالا بروید و به شاگردان او مخصوصاً پتروس بگویید که او پیش از شما به جلیل خواهد رفت و همانطوری که خودش به شما فرموده بود او را در آنجا خواهید دید آنها از مقبره بیرون آمدند و سر قبل گریختند چون ترس و وحشت آنها را فرا گرفته بود. و از ترس چیزی به کسی نگفتند. عیسی پس از رستاخیز خود در سهرگاه روز اول هفته قبل از همه به مریم مجدلیه که هفت دیو از او بیرون کرده بود ظاهر شد. مریم رفت و این خبر را به شاگردان که غمگین و گریان بودن رسانید، اما آنها باور نکردند که عیسی زنده شده و به مریم ظاهر گشته است. پس از آن عیسی به طرز دیگری به دو نفر از آنها که به دهات میرفتند ظاهر شد، آنان برگشتند و به سایرین خبر دادند. اما آنها حرف ایشان را باور نمی کردن. سرانجام عیسی به آن یازده هواری در وقتی آنها سر سفره نشسته بودن ظاهر شد و بی‌ایمانی و سختلی آنها را در نپذیرفتن گفته کسانی که او را زنده دیده بودند مورد سرزنش قرار داد. پس به ایشان فرمود. به تمام نقاط دنیا بروید و این مژده را به تمام مردم اعلام کنید. کسی که ایمان می آورد و تعمید میگیرد نجات خواهد یافت، اما کسی که ایمان نیاورد محکوم خواهد شد. به ایمانداران این نشانه های قدرت داده خواهد شد، آنها با ذکر نام من ها را بیرون خواهند کرد، به زبان های تازه سخن خواهند گفت، اگر مارها را بگیرند و یا زهر بخورند به ایشان آسیبی نخواهد رسید. دستهای خود را بر مریزان خواهند گذاشت و آنان شفا خواهند یافت ایسای خداوند بعد از اینکه با آنها صحبت کرد به عالم بالا برده شد و در سمت راست خدا نشست با آنها رفتند و پیام خود را در همه جا اعلام می‌کردند و خداوند کارهای آنها را برکت می‌داد و پیام آنها را با معجزاتی که انجام می‌شد تایید می‌نمید انجیل لغا فصل اول تقدیم به عالی جناب تیوفیلوس تا به حال نویسندگان بسیاری به نوشتن شرح وقایی که در بین ما رخ داده است اقدام کرده اند. آنچه را که به وسیله شاهدان عینی اولیه،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 و قدم های ما را به راه صلح و سلامتی هدایت فرماید و اما طفل بزرگ میشد و در روح قوی میگشت و تا روزی که علنن به قوم اسرائیل ظاهر شد در بیابان به سر میبرد فصل دوم در آن روزها به منظور یک سرشماری عمومی در سرتاسر سر دنیای روم فرمانی از طرف امپراتور اغستس صادر شد وقتی دور اول این سرشماری انجام گرفت کینیوس فرماندار کل سوریه بود پس برای انجام سرشماری هر کس به شهر خود می‌رفت و یوسف نیز از شهر ناصره جلیل به یهودی آمد تا در شهر داوود که بیت لحم نام داشت نام نبیسی کند زیرا او از خاندان داوود بود او مریم را که در این موقع در عقد او و باردار بود همراه خود برد هنگامی که در آنجا اقامت داشتند وقت تولد تف فرار رسید و مریم اولین فرزند خود را که پسر بود به دنیا آورد او را در قنداق پیچیده در آخری خوابانید زیرا در مسافرخانه جایی برای آنان نبود در همان اطراف در میان مزاره چوبانانی بودند که در وقت شب از گله خود پاسداری می کردن فرشته خداوند در برابر ایشان ایستاد و شکوه و جلال خداوند در اطرافشان درخشید و ایشان سخت وحشت کردند. اما فرشته گفت نترسید من برای شما مژده‌ای دارم شادی بزرگ شامل حال تمامی این قوم خواهد شد امروز در شهر داوود نجات دهنده‌ای برای شما به دنیا آمده است که مسیح و خداوند است نشانی آن برای شما این است که نوزاد را در قنداق پیچیده و در آخر خوابیده یافت. ناگهان با آن فرشته فوج بزرگی از سپاه آسمانی ظاهر شد که خدا را با حمد و سنا می‌سراییدن و میگفتند خدا را در برترین آسمانها جلال و بر زمین در بین مردمی که مرد پسند او میباشند صلح و سلامتی باد بعد از آن که فرشتگان آنان را ترک کردند و به آسمان رفتند چوپانان به یکدیگر گفتند بیایید به بیت لحم برویم و واقعی را که خداوند ما را از آن آگاه ساخته است ببینیم. پس با شتاب رفتند و مریم و یوسف و آن کودک را که در آخر خوابیده بود پیدا کردند. وقتی کودک را دیدن آنچرا که درباره او به آنان گفته شده بود نقل کردند. همه شنوندگان از آنچه چوپانان می تعجب می کردن. اما مریم تمام این چیزها را به خاطر می سپرد و درباره آنها امیقن می چوپانان برگشتن و به خاطر آنچه شنیده و دیده بودن خدا را هم و سپاس می زیرا آنچه به ایشان گفته شده بود اتفاق افتاده بود. یک هفته بعد که وقت خطنه کودک فرا رسید او را عیسی نامیدند همان نامی که فرشته قبل از جایگزینی او در رحم تعیین کرده بود پس از آنکه ایام تطییر را مطابق شریعت مونسا پشت سر کودک را به اورشلیم آوردند تا به خداوند تقدیم نمایند چنانکه در شریعت خداوند نوشته شده است نخوص زاده زکور از آن خداوند شمرده می شود، و نیز طبق آنچه در شریعت خداوند نوشته شده است، قربانی تقدیم کنند، یعنی یک جفت قمری و یا دو جوجه کبوتر. در اورشلیم مردی به نام شمعون زندگی می کرد، که درست کار و پارسا بود، و در انتظار سعادت اسرائیل به سر می برد. و روح القدس برو بود، از طرف روح القدس به او الهام رسیده بود که تا مسیح معود خداوند را نبیند نخواهد مرد، او به هدایت روح به داخل معبد بزرگ آمد، و هنگامی که والدین عیسی طفل را به داخل آوردند تا آنچرا که طبق شریعت محسوم بود انجام دهند، شمعون طفل را در آغوش گرفت و خدا را هم کنان گفت